مقرور و وحشی زهرارا هنوز نمی شناسی آنکه نیمی از زندگی را تنها در دل شبها و زمستانها و در زیر باران و برف و سرما همچون سخره ای بود و به صدای هیچ پایی پلک نمیزد و به آوای گرم هیچ دعوتی سربر نمیکرد. آنکه از شهر و گرما و خانه می اکنون همچون پرنده مجروحی سراسیمه و هراسان نالد و خود را بیتابانه بر در و بام این برج غریب میزند تا به درون آید و در تو پناه گیرد که زمستان سخت است و شب ناک است و تنهایی بد است رهایی هراس‌انگیز است او در انتظار تو بود چشم به راه تو بود تو را میخواست تو را می جزد. نه او از یافتنت نومید بود. او سرنوشت پدرانش را در پیشانی خیش می میدانست که تو هستی اما نمیدانست که تو را خواهد یافت. بی تو نمی خواست به سقفی پناه برد که آن نسقف تو باشد. نمی خواست به روشنایی آید که آن نروشنایی نگاه تو باشد. نمیخواست به پناهی بگریزد که آن ندامان تو باشد نمیخواست به نقمه نوازشی گوش فرادهد که آن نه از حلقوم ناز تو باشد نمیخواست به آتشی گرم شود که آن نه آتش عشق تو باشد نمیخواست به چیزی دل بندد که آن نه ایمان تو باشد ای که هوای من شده ای دم زدن در تو حیات من است ای که در گذرگاه عمر تو را یافتم تو مرا میسازی و من تو را میسازم تو مرا میسرایی و من تو را میسرایم تو مرا میتراشی و من تو را میتراشم تو مرا مینگاری و من تو را مینگارم من تو را بر صورت خیش میسازم و از روح خیش در تو میدمم که همانند منی که خلیفه منی که امانتدار منی اما افسوس، افسوس که تو در زمین نیستی، تو بر روی زمین نیستی، زمین از آن ما نیست، زمین از آن دیگران است بر روی این خاک هر دو غریبیم هر دو بیکسیم، هر دو اسیریم، زمین را برای زندگی ساختند و ما نه برای زندگی آمده ایم. زندگی را برای سعادت ساختند و ما نه در جستجوی سعادتیم ای که تو را در گذر نسلها و عمرها یافتم من نیز هر لحظه پیوندم را با زمین میگسلم با آسمان آشنا شو با ستارگان انس بگیر با آنها معاشرت کن با ماه رفیق شو با آسمان شبها خوب بگیر آنجا وطن ماست، سرزمین آزادی ماست، میادگاه آزاد ماست من در هر ستاره، در جلبه هر محتاب، در عمق تیره هر شب، در هر طلوع، در هر قروب، چشم به راه آمدن تو هم بیا، هر شب بیا، از ستاره ها نشان مرا بپرس، از محتاب سراغ مرا بگیر، از سکوت کهکشانها زمزمه مهرجوی مرا با خود بشنو از پهنه ابدیت جاودانگی آنکه با هم ساخته ایم در هم نهفته ایم با هم داریم آنچه ما را ساخته است آنکه ما را آفریده است آنکه ما را به هم آشنا کرده است آنکه مادر ماست خدای ماست روح هر دو ماست نمیدانم چه ماست چه کاره ماست آن كه ماست آن را كه ماست آن را كه دو نیمه را یک سیب کرده است آن كه دو نیمه را یک خیش کرده است دریاب بیا هر شب بیا در خلبت هر محتاب تنهایم در سایه هر شب چشم به راحت گشودم در پس هر ستاره بنانم در پس پرده هر ابر در کمینم بر سر راه کهکشان ایستادم، بر ساحل هر افق منتظرم بیا خورشید که رفت بیا شب را تنها ممان تاریکی را بی من ممان من آنجا بر تو بیم بیمناکم که با شب تنها نمانی با دیو شب تنها نمانی دیو شب بیرحم است، گرسنه است، وحشی است، خطرناک است، وحشتناک است، پرنده معصوم و کوچک من. آفتاب که رفت، پرواز کن، از روی خاک برخیز، این خرابه ی را ترک کن، بس است. میدانم که دیگر طاقتت تاق است، میدانم که دیگر به جان آمده ای، که زمین، بر دوشهای شکننده و نازکت سنگینی میکند میدانم که این های بلند سنگین بر سینه لطیف و مجروحت افتادهاند و راه نفس را بر تو سد که در زیر سقف کوتاه این آسمان رنجوری بر روی این توده خاک افسرده‌ای در سایه پجمرده‌ای بر سر راه بادهای سرد خزانی گلرگهای نازکت میریزند زرد میشوند در کبیر خشک و تافته این ملک خشک میشوی در زیر گامهای لزج و گلالوده، آلوده نگاههای پلشت نابینایان چارپای راست بالای پهن ناخن سااقه ناز اندام هستنت می‌شکند. در ترشوه کثیف فهمهای کرمانند. محتاب پاک دامنت میآلاید در گندزار زندگی گندیده آدمیان یاس آرزوهای معترت میمیرد در سیلی دیوان هر دیداری شکوفه های سپید تمنایت میریزد در گذرگاه وزش گردبادهای زشت و ناهنجار هر بیهودهی جوانه های بیتاب شکفتن امیدت کبود میشود می خوشگد به خاک میافتد گل من پرپر پر نشوی که بلبلی در باز شدن قنچه لبخند تو زبان به سرود باز کرده است شم من خاموش نگردی که چشمی در پرتو پیوند تو به دیدن آمده است ساقه گلبن بهار من نشکنی که دلی در رویش امیدوار تو دل بسته است آفتاب من غروب نکنی که شاخه آفتاب گردانی به جستجوی تو سر است دامن من تو را بر نچینند که حلقومی اقددار است سومه من فرو نریزی که دلی نیازمند نیایش است چشمه من نخشکی که جگری در آتش کبیر سوخته است بالین من تو را بر نگیرند که سری بیمار است بستر من تو را بر نبندند که تنی تبدار است کاشانه من ویران نگردی که آواری بیپناه مانده است بازگافته من گم نشوی که بهشت باز بازیافته ی روحی هستی که در دوزخ نشیمن دارد. ای کال بد من روح سرگردان خیش را فرا خان. من لبهایم را در حلقوم تو خواهم نهاد و خود را در تو خواهم دمید تا حیاتت بخشم. ای روح من کال بدت را سراغ کن. لبهایت را در حلقوم من نه خود را در من بدم تا حیاتم بخشی که ما کالبد یکدیگریم که ما روح یکدیگریم که ما آفریدگار یکدیگریم که ما پروردگار یکدیگریم که ما تمام جمعیت جهانیم که ما همه ایم. که ما همدیگریم، دیگریم که ما جایگاه زمین نیست که ما در این ملک غریبیم بی کسیم تنهاییم بیگانه ای که تو آن من دیگرمی ای تو که آن توی دیگرتم ای هموطن من هم شهری من هم کوچه من هم خانه من آشنای من خیشاوند من مگر نه تو خود را مسافری می‌یابی مگر نه که میدانی سفری هستی مگر نه این است که سفری در پیش داری ای هم سفر من ای هم سفر من برخی زاد سفر برگیر و قدم در راه نه که من در پایان راه بی صبرانه چشم به راه رسیدن توام تا از آنجا تو را ببرم از این کشور قریب به سرزمینمان بازگردیم به آشیانمان دراییم کودکانمان باز آیند و بر دامنمان چنگ زنند گردمان حلقه بندند زندگی را از سر گیریم. خیانت شیطان و خطای مادرمان و فریب پدر را به گریه های شبانه، به قدرت ایمان، به اعجاز خطاپوش عشق، به اخلاص از یاد خداوند خدا بشوییم دست در دست هم بر راه گذر صبح بی‌زدم، راه را بر ببندیم. این گردونه بسته مکرر زمان را پاره کنیم از این مدار بی حاصل و اختناقاور بگریزیم و از جبر این تبعید گاه شوم به شهر خدا به اتوپیا به بهشت برین و عالم مسل چه میگویم به خانه خیش برگردیم رجعت شورنگیسترین آرزوی دلهای خونا کرده به گار است از عمر را در تبعیدگاه سیاه بسر کردم و با آن خونه کردم با قلعبانان بیعت نبستم تنها و قمگین در خلوت جمعیت خلق می گردم و با کسم کاری نیست و گویی هر چشمی مرا چشم خلیفه است در من آویخته و مرا امید رهایی نیست پیام آشنایی نیست کوه‌ها و دریاها و آدمها و درختها و رنگها همه از برابر چشمم پاک شدند، محف شدند و در برابرم دشت بیرنگ و یک دست ساکتی گسترده است و چنان پهناور که به مرز عدم می پیبندد. از بالای سرم سرپوش آسمان را برداشتند و فضای بیکرانه و بیرنگ عدم نمودار شده است و من خود را همچون سایه موهومی می بینم که در قلب صحرای نیستی افتاده است و می لرزد آواره است می ایستد می ربد, می گریزد و می پرد و باز می گردد و وحشت زده است حیرت زده است پناهی می جوید و نمی آبد دامنی می و نیست سایه موهومی آواره و هراسان، این سایه منم این سایه است، مگر نه هر سایه ای ذاتی است. چرا؟ این سایه سایه اوست او که بر سر راه من ناگاه پدیدار شد او که پدرانم همه در پیش عمر را گذاشتند و گذاشتند و نیافتند و هیچ یک از رفتن باز نایستادند او که جد بزرگم در جست و جویش شهر را و خلق را رها کرد و گوشه گرفت و در خلوت نمازش و در حضرت تدریسش به دنبالش میگشت و عمر را در جستجوی او به سر آورد و رخ در نقاب خاک تیره کشید و فرزندش دنبال کرد و عمر را در پیش به پایان برد و نیافت و فرزندش دنبال کرد و عمر را و من آمدم و از آن راه باز نگشتم به راه دیگر نرفتم و رنج سفر و تلخی گمنامی و پریشانی بر خود هموار کردم و آهسته با پیوسته آمدم, آمدم و آمدم و آمدم و ناگاه یافتم او را یافتم. و اکنون همه اشیاء طبیعت اویند. همه چهره ها چهره اویند، همه ها صدای اوست، همه هست ها هست اوست، و من اکنون چنان به او نزدیکم و او چنان به من نزدیک است که از شاهرگ گردنم به من نزدیک تر است، از جانم به من نزدیک تر است، از من به من نزدیک تر است، از بودنم به من نزدیکتر است از خودم به من شبیه تر است از خودم با من تر است از خودم با من مهربانتر است او از خود من منتر است او بیشتر از من من است او بهتر از من من است او راستینترم تا من او خوبترم تا من چه میدانم کدام عبارت درست تر است بگویم من اویم یا او من است من نمیدانم چه تفاوتی دارد آنچه هست و آن را زنده تر و تند تر و روشنتر و سنگین تر از خود میابم این است که ما همیم آری، پیدا کردم جمله اش را پیدا کردم ما همیم چه کسی از آغاز سخن گفتن در جهان گفته است ما همیم هیچ کس هم را من اکنون در درون دارم در خود دارم نداشته است نمیدانم او من شده است یا من او گشتم آنچه هست و من آن را در خود می این است که ما یکدیگر شده ایم و چه فهمی در این جهان هست که بفهمد که یکدیگر شدن چیست در همه هستی یک او ی دیگری هم هست که منم و یک من دیگری هم هست که اوست و اکنون چگونه می توانم از کسی چشم داشته باشم که سخنم را در یابد که این دو یکدیگر را به هم چه نیازی است تا کجا به هم محتاجند چه کسی میداند که نیاز دو تن جز نیاز دو یک دیگر است دو تن برای خوشبخت بودن به هم نیازمندند و دو یک دیگر برای بودن، در اینجا شادی درد خنده مسخره است، خوشبختی منجلاب به پست و گدایانه است. ای که تو را پس از چهار نسل پیاپی، پس از یک قرن، مدام بر سر راه اجداد بزرگ و پاک نهادم یافتم، من به تو محتاجم، باش، ای که تو را نمیدانم چه بنامم همه کلمات با آنچه چه میان من و توست بیگانه اند کلمات خدمتگزاران پست دیگران و من هیچ کلمه ای را برای گفتگوی با تو شایسته‌تر از سکوت نیافتم آیا سخن مرا می‌شنوی هر جا هستی لحظه هایی را برای شنیدن سخنان من به گوشه سکوتی پناه بر و به من گوش آیا در آن لحظاتی که همه جا در سکوت آرام گرفته است و همه چیز خاموش شده است، صدای مرا نشنیده ای که با تو سخن میگویم؟ من همواره در خلوت غمگینم با تو گفتگو دارم. تو در تنهایی من همیشه هستی. هرگاه که به انزوای خاموشم سر میکشم تو حاضری و با چهره مهربان و لبخند نوازشگر و نگاه های تسلیت بخش خیش پیشم می خزی. گرد ملال زندگی را از رخسار خسته میزدایی لبخند امید بر لبان تلخم می نشانی تسکینم می دهی. آرامم می کنی توانم میبخشی، جانم می امیدوارم می کنی مرا به یادم میآوری، سیرم می کنی سیرابم می کنی مقرورم می کنی خودخواهم می کنی. تلخیها را از جانم میشوی جراحتها را در قلبم مرهم مینهی دردها را در روحم التیام میدهی رنجها را در جانم محو میکنی خوبم میکنی تندرستم میکنی راضیم میکنی تو اکسیر منی تو معنی زندگی منی تو سرمنزل هر سفر منی تو سرچشمه هر عتش منی تو خوبترین منهای منی تو روح کالبد منی تو نگاه چشم منی، تو نبز های منی، تو تپش دل منی، تو گرمای تن منی، تو وزن بودن منی، تو دم هر نفس منی، تو هر لحظه عمر منی، تو مخاطب هر خطاب منی، تو گیرنده هر نامه منی، تو منادای هر ندای منی. زیبایی هر لبخند توی، شهد هر بوس توی، شکر هر شربت توی، نشعه هر شراب توی، گرمی هر امید توی، نازکی خیال توی، قامت آرزو توی، پرتو هر شعله توی، جازبه زمین از توست، خرمی بهار از توست، سبزی سبزه ها توی، آبی آسمان توی، دخلستان علی توی درخت بودی بودا توی، آتش تور موسا توی، آه، این تصویر آشنا، تصویر کیست؟ تصویری که سالهای دراز بوده و هست و همواره آن را دوست می داشتم و هموار آن را با خود خویشاوند میافدم و میدانستم که این عکس یادگاری کسی است که نمیدانستم کجا او را دیدم کجا هست؟ اسمش چیست؟ اما میدانستم که این چهره عزیزی است که با من خویشاوندی بسیار نزدیک است مثل اینکه حتما ما را از یک مشت گل سرشتند مثل اینکه در دنیای دیگری پیش از این با او زندگی می کردم. اهل یک مملکت بوده ایم یک شهر یک محله و شاید هم یک خانواده و مثل اینکه با هم بزرگ شده ایم کودکی را با هم بوده ایم خیلی با هم رفیقیم و هم روح و مثل اینکه اصلا یکی هستیم و یا یکی بوده ایم و بعد ها که نمیدانم کی و کجا؟ آن سر و سامان به هم ریخته و قیامت شده و در این دنیا دیگر او را گم کرده ام و هنوز او را نیافده ندیدم. اما خاطره ای گنگ ولی بسیار سنگین و زنده از او همواره در من بوده و بو هست و مرا همواره در پی خیش می کشنده و در هر چهره ای او را می و نمی و هر صدای پایی مرا به خود آورده که شاید اوست و نبوده است. و با صدای هر دری از شوق پریدم که اوست من نبوده است. و کم کم از یافتنش نومید شدم و از یعص دیگر به هیچ صدای پای گوش نمی دهم و هیچ صدای دری مرا از خیش به در نمی برد. و در هیچ آوازی تنین آشنای او را نمی شنبم. و کم کم یقین کرده بودم که او نیست. شاید او اصلا به این دنیا نیامده است و همانجا مانده است، شاید مرده و شاید هم هست و من او را نمی بینم، اما چهرش در نظرم آشناست و تصویرش در زمیرم زنده است و هموست که همه چهره ها را در چشمم بیگانه کرده است، و هموست که من او را تنها خیشاوند و تنها دوست و تنها هموطن و همخون و همخانواده خیش در این قربت زندگی و قربت دنیا میدانم و نیست و هموار آرزوی یافتنش، و دغدغه گم کردنش و خاطره آن نمیدانم کی هایی که با او بودم و با هم بودیم و او مرا بس بود و من او را بس بودم و من او را در خویش میدیدم و او مرا در خویش می یافت من خود را در او میدیدم و او خود را در من می یافت و در کنار او گویی خود را در کنار هستی میدیدم و مرز انتهای هرچه هست با او خود را در انتهای همه راه ها و با هم چنان بودیم که گویی تنهاییم نه گویی با همه راه ها و با هم چنان بودیم که گویی تنهاییم نه گویی با همه عالمیم تنها با او گویی تنها با خودم بودم و در حضور هم گویی هیچ کس غایب نیست گویی هیچکس حاضر نیست هیچ چیز نیست که نباشد با او استراب ناگفته ماندن نبود سکوت نبود و گفتن نبود آرامشی و اطمینانی زاده رسیدن به سرمنزل بود نیاز نبود انتظار نبود، تشنگی نبود، حراس نبود، شور جوانی نبود، سردی پیری نبود، جوانی نبود، پیری نبود تظاهر نبود و دروغ نبود و فریب نبود، تصنع نبود و نمودن و بودن نبود، تناقض و تضاد نبود یک من بود و نیازی به تحمل کشیدن بار چندین من نبود هیچ چیز نبود و همه چیز بود گویی با هم ایم و گویی با هم خواهیم مرد نفس ها با هم میزدند و نفس ها با هم میکشیدند. با هم زنده بودیم میاندیشیدیم و در میان ما فضا نبود و خلاء نبود و نزدیک شدنها و دور شدنها نبود کلمه نبود و شرط نبود هیچ چیز نبود و همه چیز بود رنج تلخ نبود طبیعت وحشی و مرگ حراسناک نبود و سخت سخت نبود که اگر دوتن چونین خویشاوند چون دوست با هم بمیرند مرگ حراسناک نیست هراس مرگ از آن است که گریبان آدمی را تنها میگیرد و جدا میکند با هم به سراغ مرگ رفتن وحشتناک نیست با هم مردن سخت نیست که اگر بگویم لذت بخش هم هست باور نمیکنند. با هم رنج بردن تلخ نیست که اگر بگویم شیرین است باور نمی‌کنند با هم زیستن و در زیر این آسمان دم زدن قربت نیست همه ها، سختیها، ها و ها و وحشتها همه از تنهایی است از مجهول ماندن است جدا مردن است نمی‌دانید سلول تنگ و تاریک زندان اگر زندانی تنها نباشد فراخ است بیکرانه است مهد آزادی است و خانه است و زندگی است اما میدانید که بر روی این خاک اگر تنها بمانیم چقدر تنگنای کور است و افقها چه دیوارهای سخت و بلند و نزدیک است و آسمان چه سقف کتاه و سنگین